درود و صد سلام به یاران همیشگی رادیو البورز اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سهم شما میرسونم اقدام دولت دانماک در بازگرداندن پناهندگان افغان بعد از تصویب قوانین پناهندگی جدید در دانماک طبق آن هزاران نفر از پناهندگان افغاد باید به کشورشان بازگردانده شوند دولت در بازگرداندن پناهندگان پیش قدم شده و چند ماه پیش شروع به دیپورت کردن افغان ها کرده. اگرچه در ماه های اخیر شرایط امنیتی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان بدتر از قبل شده اما وزیر امور مهاجرت و دولت این کشور اعلام کرد که افغانستان کشوری کاملا امن است و مشکلی برای پناهندگان دیپورت شده پیش، نخواهد آمد. رئیس جمهور آمریکا یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود را در اولین هفته ورود به دفتر کار خود در کاخ سفید عملی کرد. دونالد ترامپ دستور اجرایی را تحت عنوان حفاظت از آمریکا در برابر حملات تروریستی امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به آمریکا برای دستکم چهار ماه تعلیق می‌شود. قرار این دستور ورود شهروندان 7 کشور که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند از جمله ایران به آمریکا برای 90 روز ممنوع شده است. به جز ایران شش کشور سوریه، عراق، یمن، لیمی، سومالی و سودان هم در فهرست کشورهای ممنوع قرار دارند. دولت ترامپ در مبارزات انتخاباتی با بر دهندگان آمریکایی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قوانین سختگیرانه ای را برای کنترل افرادی که از کشورهای دیگر وارد آمریکا می شوند، به کار خواهد بست. آقای ترامپ گفته است که با وجود قانون جدید، پناهندگان مسیحی سوریه اولویت خواهند داشت. در متن دستور رئیس جمهور آمریکا آمده است که ممنوعیت ورود پناهجویان سوری به آمریکا تا زمانی ادامه خواهد داشت که قوانین این کشور با تغییرات اساسی طوری تنظیم شود که با منافع ملی آمریکا سازگار باشد. در پی صدور فرمان اجرای ترامپ مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع 7 کشور از جمله ایران، دولت اتریش ویزای حدود 350 پناهجوی غیر مسلمان ایرانی که امیدوار بودند از راه این کشور به ایالات متحده بروند را لغو کرد. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که واشنگتن به ویان اطلاع داد که سفر افرادی که ویزای خود را بر اساس برنامه قبلی از مقام های اتریش دریافت می فعلا فعلاً معلق شده است خبرگزاری ها اعلام کردن ضمن انتشاره این خبر بر اساس قانونی که 27 سال پیش از سوی کنگره آمریکا برای کمک به یهودیان ساکن در اتادیه جماعیره تصویب شد بسیاری از ایرانیان مسیحی یهودی و بهایی که در کشور خود تحت فشار قرار و شرایط پناهندگی از ایالات متحده را داشتند خود را از راه کشور اتریش به آمریکا میرساندند از آنجایی که امکان بررسی شرایط این افراد در ایران وجود ندارد مصاحبه ویزا به آنها در اتریش انجام می شده است و اما پیشنویس دستورالعمل اجرایی ترامپ چه میگوید این پیشنویس صدور هر گونه ویزا برای شهروندان ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، لیبی و یمن را به مدت سی روز متوقف می کند. در پیشنویس دستور روامر کاخ سفید از وزارت امنیت ملی آمریکا و نهادی اطلاعاتی می خواهد که از دولتهای کشورهای مذکور در زمینه اعطای ویزا به شهروندان آنها اطلاعات درخواست کنند و فهرستی دولت دولتهایی که همکاری نکردن را به کاخ سفید ارائه کنند. با توجه به این دستور به نظر میرسد دولت ترامپ قصد دارد لغو احتمالی اتهای ویزای آمریکا به شهروندان کشورهایی که از نظر وی همکاری نکردهاند را تمدید کند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین می تواند اسامی کشورهای دیگر را به کاخ سفید بفرستد. محدودیت های مندرج در پیشنویس شامل ویزاهای دیپلوماتیک نمی شود. در پیش‌نویسه دستور عمل به واژه اسلام اشاره مستقیم نشده است. در سند آمده اشخاصی که دست به قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان می‌زنند به قانون اساسی آمریکا اعتقادی ندارند یا قص حملات تروریستی در آمریکا را دارند نباید وارد خاک این کشور شوند. فرمان در عمل شامل 7 کشور با اکثریت مسلمان می شود که آمریکا درباره فعالیت تروریستی دولت های آنها با حضور گروه های نظیر القاعده و داعش در قلم روی آن کشورها نگران است این کشورها عبارت از ایران و عراق و سوریه و یمن و سودان لیبی و یمن میباشد با این حال اداره مهاجرت آمریکا همچنان می تواند در مواردی معدود که صلاح میداند از جمله بر مبنای منافع ملی آمریکا به افراد خاصی که از این کشورها ویزای سفر یا مهاجرت به آمریکا اعطا می کند این فرمان شامل حال اقلیت های دینی نیز می شود. اما در صورت آغاز مجدد اعتای ویزا به شهروندان این کشورها اقلیت های دینی برای دریافت پناهندگی اولویت خواهند داشت اقلیت‌های دینی به ویژه در ایران سالهاست که در عمل برای دریافت ویزای پناهندگی آمریکا اولویت داشتند این پیشنویس سفر بسیاری از ایرانی ها به امریکا را فعلا به حالت تعلیق درآورده اما امضا پس از گذشت سی روز تمدید می شود سفر با امریکا برای ایرانیان فقط به صورت معدود و موردی و نیز در صورتی که در راستای منافع ملی امریکا باشد میسر خواهد شد پیشنویس سند هرچند شامل ویزای مهاجرت و غیر مهاجرت می, می شود ولی بر وضعیت کسانی که دارای کارت سبز آمریکا یا شهروندی این کشور هستند اثری ندارد. پیشنویس همچنین به وضع شهروندان ایران که در آغاز در آمریکا به عنوان ترور... تروریست یا دانشجو هستند و یا در مرحله روند پنندگی هستند اثری ندارد. پیشنویس پذیرش تمام پناهجویان را برای 120 روز معلق می‌کند. پذیرش پناهجویان سوری تا اطلاع ثانوی معلق شده است. و یه آخرین خبر در مورد کانادا کانادا اعلام کرد که در سال 2036 نیمی از جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل میدهند که زبان اصلی آنها نه انگلیسی نه فرانس هست. بلکه زبان مادریشان است این در حالی است که در کشور همسایهمان آمریکا ترامپ دارد به وعده های خود برای محدود کردن مهاجرت به این کشور عملی می کند خبرنگار با عنوان اینکه ترامپ میگه میکشد کانادا مهاجران را در آغوش می‌گیرد گزارش داد مهم نیست موافق اقدامات آقای ترامپ باشیم یا مخالفان آن رئیس جمهور آمریکا دارد به تک تک وعده‌های خود عمل می‌کند او در جدیدترین اقدام خود دستور داده دیواری بین مکزیک و آمریکا کشیده شود او پس از امضای این دستور عمل گفته هدف این کار جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از مکزیک به آمریکاست غیر از اینکه این اقدام چه قدر عملی مشکلی که به نظر میرسد پیش بیاید تعیین دقیق مرزی در مناطقی است که محل اختلاف بوده است از سوی دیگر کارشناسان میگویند ساختن دیوار هیچ اثری بر ورود ها به آمریکا نخواهد داشت در همان حال دیروز اعلام شد در سال 2036 در کانادا نیمی از جمعیت مهاجر یا فرزندان مهاجر خواهند بود لواتون خندون دلاتون شات تندرستیتون پای دار.